اقوام و تیره ها در عصر ساسانی بخش سوم از کتاب تاریخ نهاد در عصر ساسانی نوشته دکتر شروین وکیلی خانش از صفور فخری کالی از گروه آوای خورشید گذشته از مورد مناقشه برانگیز روم اسناد دوران ساسانی تصویری نسبت دقیق را درباره بافت قومی و جمعیتی بخش‌های مرکزی ایران زمین بدست می‌دهند. های تاریخ نویسان رومی و اسناد بازمانده از زایران زا چینی بودایی که برای زیارت به ایران زمین می‌آمدند هم شواهدی بیشتر در اختیارمان می‌گذارد. بر مبنای این داده‌ها می‌توانیم اقوام مستقر در ایران زمین و پیرامون آن را و دامنه بیرونیش را به این ترتیب فهرست کنیم. با این گذشت که تصویر واقعی بیشک از آنچه در اینجا بازنمایی می‌کنیم این پیچیده‌تر بوده و بسیاری از اقوام در قلمروهای دوردست نسبت به قلمروهای اصلیشان مقیم بودند بر مبنای این شاخصها در قلمرو ایران زمین عصر ساسانی این اقوام را می‌توان تشخیص داد نخست در جنوب غربی ایلامی ها آتا نیمه اصر ساسانی همچنان به زبان ایلامی نو سخن میگفتند. اما به تدریج در جمعیت شهرهای جنوب غربی ایران زمین جذب و هضم شدند. این ربندی بود که قوم بابلی چند قرن پیشتر تجربه کرده بودند و در شهرهای ایرانی نشین میان رودان حل گشته بودند. در میان رودان قومیت بابلی و آشوری در اصر عشقانی همزمان با توسعه شهر نشینی در این مناطق از میان رفتند. و به جایشان هویت آرامی و یهودی پدید آمد که هر دو پیش از این هم وجود داشتند اما زیر سیستمی از قومیت‌های برخواسته از دولت‌های آشوری و بابلی قدیمی محسوب می‌شدند در بین این دو آرامی‌ها جمعیتی بیشتر و پراکندگی جغرافیایی کمتری داشتند و یهودیان که بیشتر شهرنشین بودند به خاطر ویران شدن شهر مقدسشان به دست رومیان پراکندگی بیشتر و جمعیتی کمتر را نشان می‌دادند در کنار این دو عرب ها هم بودند. این قوم که در اصر هخامنشی قومیتی محدود به یمن و هجاز بودند از میانه دوران ساسانی به بعد افزایش جمعیت چشمگیری را تجربه کردند و هم به بخش درونی ایران زمین کوچیدند و هم در سوریه و آسورستان جمعیتی درخور یافتند و در نهایت با حجوم خود دولت ساسانی را از میان بردند. عربها با قوم نبتی و تنوخی پیوند داشتند که زودتر از ایشان به شمال کوچیده و جنوب سوریه و فلسطین را در اختیار گرفته بودند. دوم در شمال غربی، مهمترین و نیرومندترین قوم های اصر حخامنشی در سر و سر دوران اشکانی دوام آوردند. و در اصر ساسانی نیز همچنان گوشه شمال غربی ایران زمین را در اختیار داشتند. مهمترین این اقوام عبارت بودند از مادها که پس از حضور یک قرنی دولت آزرباد سرزمینشان ماد آتورپاتیکان خوانده میشد و هویتشان آذری بود. در کنارشان ارمنی ها ساکن بودند که در جریان کشمکش های میان پارتیان و رومیان خط مقدم جبهه ایران را تشکیل میدادند و با وجود وفاداری چشمگیرشان به هویت و فرهنگ پارتی به قومیتی مستقل تبدیل شده بودند. با کار آمدن ساسانیان ارمنستان همچنان تا دیر زمانی زیر فرمان شاهزادگان اشکانی بود و از این رو بخشی از هویت قومی پارتیان قدیم در ارمنیها باقی ماند و تداوم یافت. با این تفاوت که از اواخر عصر اشکانی به تدریج قومیتی تازه در این منطقه شکل گرفت و ها را بر صحنه پدیدار ساخت. منطقه قفقاز علوه بر ارمانی ها و گرجیها ها در این دوران نخستین نشانه از هویت آرانی رانی ظاهر ساخت. آرانیها که امروز به اشتباه آذری خوانده می شوند و با اشتباهی بزرگتر خود را به قوم ترک مربوط می دانند از اقوام ایرانی باستانی ساکن در قفقاز بودند که در میانه دوران ساسانی از ارمانی ها و گرجیها ها تمایز یافتند و به صورت قومیتی مستقل در آمدند. حسته مرکزی این مردم شهر گنجیه امروز بر سرزمینی بود که در قرون میانه شروان نامیده میشد. مسعودی میگوید که قلم رو به شروان را آنو شیروان دادگر تاسیس کرد و به این رسم اشاره کرده که حاکم آنجا شروانشاه خوانده می شود. همچنین میگوید تا تاریخ نگارش مروج الذهب 313 هجری خورشیدی مقارم با 332 قمری حاکم آنجا که محمد ابن یزید خانده می شود از نوادگان بحرام گور است و آن قلمرو همواره در دست این خاندان بود است. مسئولی همچنین به دو قلمرو دیگر در همسایگی شیروان اشاره می کند. یکی از آنها باب است که آن را نیز ساخته ی انو شیروان می دانند و منظورش همان دربند است. و از دشه های استوبار آنجا و نقش دفاعیشان در برابر دستاندازی قبایل کوشگرد ترک و آلان و خزر بسیار تعریف می کند. دیگری قلم است که آن را ایران می‌نامد و میگوید حاکمش ایران شاه نامیده می است و احتمالا منظورش آلبانی امروز است که مردمش اوستیهایی هستند که تبار سکایی دارند و هنوز هم خود را ایرانی می‌نامند. یکی از قلمروهایی که ایران شرقی و غربی را در شمال کویر بزرگ با هم چفت و بست میکرده و کانونی هویت ساز و منسجم کننده محسوب می شده قلمرو ری و البرز است. شهر ری در اصر ساسانی مرکز این قلمرو بوده و خاندان های نیرومندی که مهمترینشان مهران است در آنجا زمین های پهناوری در اختیار داشتند. قومیت اهالی ری به مردم ماد باز میگشت و در منابع کوهن میز ری را هموار بخشی از ماد به حساب می آوردند. ری که شهری بزرگ بود و گرانیگاه تجارت شرق و غرب در شمال ایران زمین محصوب می شد جوش بزرگی بود که اقوام و زبانها و ادیان گوناگون در آن با هم ترکیب می شدند و از دیرباز به همین خاطر از مرجعیتی فرهنگی برخوردار بودند. چنانکه در نوشتارهای دیگرم نشان دادم به احتمال زیاد اوستا برای نخستین بار در این شهر نوشته شد و هفتهات که پس از گاهان کوهندترین متن زرتوشیست در ابتدای هزاره اول پیش از میلاد در این قلم رو پدید آمده است. ری در دوران ساسانی به کلان شهری بزرگ بدل شد و در استقلال از ماد هویت ویژه خود را پیدا کرد. در آناتولی که میدان نبرد جانشینان اسکندر بود قومیت های باستانی بیشترین ضربه را دیدند و کمابیش در گرمان گرم کشتارهای مقدونیان و رومیان منقرض شدند. به این ترتیب حویت های کلیکی، کابادوکی و لودیایی در دوران اشکانی در میان دو آسیا سنگ ایران و روم سایده شده و از میان رفتند. در اثر اشکانی هویت نوزور بیزانسی بیشتر در غرب آناتولی و پونتی بیشتر در شرق آناتولی از دل این اقوام باستانی زاده شدند که اولی با روم و دومی با ایران هم پیمان و هم بودند با تأسیس امپراتوری روم هویت بیزانسی هسته مرکزی دولت روم شرقی قرار گرفت و به کلی از ایران مستقل شد در مقابل هویت پونتی که تا قرن اول و دوم میلادی همچنان پابرجا بود با قومیت های ایرانی کابادوکی و ارمنی و گرجی و کرد و آرامی پیوند برقرار کرد و موقعیت خود در مقام قومیتی مستقل را از دست داد سوم در جنوب شرقی در جنوب شرقی ایران زمین حراتی ها کما بیش با همان هویت دیرینه ایشان باقی ماندند هویت تازه توخاری کوشانی که در عصر اشگانی در این منطقه زاده شده بود، در کنار قومیت هراتی قرار گرفت و این دو بخش بزرگی از اقوام قدیمی منطقه را در خود جذب کردند. زرنگی های عصر هخامنشی که در دوران اشگانی با سکه‌های نوامده ترکیب شده بودند، هویت قومی سیستانی را پدید آوردند و مردم رخج و مکران و تتگوشه هخامنشی در ترکیب با قبایل شمال هند هویت بلوچی را ایجاد کردند. هندیها که بخش عمده دوران ساسانی استانی از ایران محسوب میشدند با تأسیس دولت گوپتا به تدریج از مرتبه قومی در درون سپهر تمدن ایرانی بیرون آمدند و به دولتی مستقل بدل شدند که هویت ملی مستقلی را ادعا می کرد. در کنار دولت گوپتا بخش دیگری از هند در راجستان و گجرات و تاکسیلا به ایران پیوسته باقی ماند و این همان منطقه‌ای بود که مانند سابق هند نامیده میشد اما نمانند شهروندان دولت تا هویت سیاسی مستقل داشتند و ندین هندو را مبنای دیانت می شمردن. چنین مینماید که تا زمان بهرام گور روند سیطره دولت ساسانی بر شمال هند تکمیل شده باشد. در شاهنامه داستان تخیلی رفتن بهرام گور به هند در جامعه فرستادگان نقل شده است. بر اساس این داستان بحرام گور در کسفت پیکی که از طرف بحرام برای شنگل شاه هند آورده آورده به این سرزمین وارد می شود و با کشتن کرگدن و اجداها ارج و مقامی می و با سپینود دختر شنگل ازدواج می کند. این داستان را در مروج و زهب هم می خانیم. بعدتر که شاه هند از هویت بحرام گور آگاه شد با او عهد و پیمان بست و به این ترتیب کشمکش دو شاه با آشتی ختم شد. فردوسی میگوید چندی بعد شنگل قصد دیدار بهرام گور کرد و با هفت شاه هندی به ایران آمد. این شاهان به سرزمین های کابل، سند، سندل، مندل، جندل، کشمیر و مولتان تعلق داشتند. تبری هم همین داستان را نقل کرده و گفته که سرزمین سند و مکران و دیبل جهیزی دختر شاه هند بود که به بهرام بخشیده شد و به خاک ایران منزم گشت. بنابراین تردیدی نیست که هویت هندی آریایی که به نوار بالای شبه قاره هند محدود می شود در عصر ساسانی استانی ایرانی بوده و هندیان را همچون تیره از اقوام ایرانی در خود جای می داد است. هرچند هویت مستقل هندوی هم در خارج و جنوب این قلمرو به تدریج در قالب دولت گوپتا تکامل می آفد. چهارم در شمال شرقی ایران شرقی در اصر ساسانی همان اقوام باستانی اصر حخامنشی را در خود جای داده بود با این تفاوت که ورود قبایل سکایی و تخاری در ابتدای دوران اشکانی بافت جمعیتی منطقه را دگرگون ساخته و انصر ایرانی شمال را بر های هندی جنوبی چیره ساخته بود اگر از جنوب شمال برویم با این های جغرافیایی و جمعیتی روبرو میشویم مردم استانهای باستانی روخج و حفرود و تتگوشه که در محل پاکستان و بلوچستان امروز قرار میگیرد و دو قومیت بلوچ و بنگالی و اردو را در خود جای میدادند این قومیت ها تازه در دوران ساسانی تمایز یافتند در شمال این منطقه استانهای باستانی هرات و کابل قرار داشت که مردمش بازمانده ی هراتی های باستانی بودند که با سکاها و مقدونیان آمیخته بودند و کم کم به قوم پشتون دگرگسی می آفتن. قبایل باستانی کورو و کمبوجه که در این منطقه میزیستند هم احتمالاً در این قومیت و بلخیها جذب شده بودند. در شرق این قلمرو استان باستانی زرنگه در ابتدای عصر اشکانی به صورت اردوگاه سکه های مهاجر در آمده بود، حالا سیستان نامیده می شد و مردمش قومیت متمایز سیستانی داشتند. این مردم نواده مستقیم سکه های باستانی بودند که با مردم زرنگه ترکیب شده بودند. زرنگی های باستانی به پارسا شبیه بودند و قومیت سیستانی هم از نظر زبانی و فرهنگی چنین وضعیتی داشت. در شمال بلخی ها قرار داشتن که قومیت باستانی بودند و با جز و عقبام همسایه از جمله تیرهای گسترش بیشتری هم یافته بودند. در همسایگی آنها سقدیها و خارزمیها و مربی ها قرار داشتند که کامو بیشتر همان مرزهای قدیمی ها باقی مانده بودند. هواییت قومیشان ادامه مستقیم همان روند بسیار ای بود که تا هزاره پیش از ظهور نیز عقب میرفت و در این هنگام نزدیک به دو هزار سال قدمت داشت. قدری شمالتر اقوام سکا حضور داشتند که در آمیختگی با قبایل زرپوس ترکستان و چین به تدریج هویت قومیشان دگرگون میشد و به ترکا تبدیل می‌شدند. ظهور ترکا پی... پیامد افزایش جمعیت مردم مغولستان و تاتارستان و در آمیختن این مردم با سکه ها بود عنصر زردپوست به تدریج در این آمیزه غلبه کرد و هم شکل ظاهری و هم زبان بیشتر به سوی زردپوستان آلتایی گرایش یافت این گذار از نژاد آریایی به مغول که از ابتدا تا انها با حضور نیرومند نژاد مقابل همراه بود در دوران ساسانی دو قومیت هپتالی و هونها را پدید آورد که اولی بیشتر سکا و دومی بیشتر ترک بود. بلخی‌ها همچنان هویت متمایز خود را داشتن، اما بیش از پیش با قبایل نومیده ترکستان ترکیب شدند و هم ها را تا حدودی بلخی ساختند و هم خود تا حدودی عناصر هپتالی و سکا را از ایشان وام گرفتند. هپتالیها از شمال شرقی وارد قلمرو به ایران زمین شدند و تا بلخ پیشروی کردند و در آنجا خط و زبان بلخی را برای نوشتن متون خیش اختیار کردند. در همسایگی بلخیان، خارزمی ها و مروی ها نیز همچنان هویت‌های مستقل خود را داشتند، اما به همین ترتیب بیش از پیش با قبایل کوشکرد، سکایا و ترک درمی‌آمیختند. این مردم در پیوند با اقوام گرگانی و پارتی قدیم به تدریج هویت قومی بزرگ به فراگیری را پدید آوردند که خراسانی نام داشت و به تدریج بلخی ها را هم در خود جذب کرد. روند جز و ادغام اقوام کوچک و برآمدن اقوام بزرگتر در حاشیه جنوبی دره مازندران با این گستردگی انجام نگرفت. بافت جغرافیایی خاص این منطقه و پراکندگی جمعیت و کمزور بودن قدرت مرکزی باعث شد های قومی دیرتر و در گستره‌های جغرافیایی محدودتری شکل بگیرند با این همه تا پایان دوران ساسانی در نوار جنگلی میان کوهستان البرز و دریای مازندران چهار هویت قومی متمایز شکل گرفته بود که از شرق به غرب عبارت بودند از تبری، دیلمی، گیل و تاتی. این هویت‌ها در گرد, گرد دریای مازندران دیده میشدند و در شمال با قوم های ایرانی ماننده آلان ها و سکه ها گره در شمال شرقی رشته کوه البرز قلم را به گرگان و مازندران را داریم که نامش در متن‌های تازی به صورت فرشوات یا فدشوارکر ثبت کر شد این کلمه در اصل پده شخوارگر بوده و آن به گزارش استرابو نام دیگر رشته کوه الورز است. تردیدی نیست که بخش مهمی از شهرهای امروزین مستقر در این سرزمین خواستگاه ساسانی دارند یا دست کم در دوران ساسانی بازسازی شدند. در شمال و شرق این منطقه سرزمین باستانی سقد قرار داشت سغدیان بنیانگزاران و مدیران راستین راه ابریشم محسوب میشدند و از این راه به نفوذ و اقتدار چشمگیری در سراسر قرمرو میان ایران و چین دست یافته بودند شبکه شهرها و مرکز جمعیتی سغدیان از میانه قرن چهارم میلادی در ترکستان چین و فراسوی آن گسترش یافت طوری در قرن پنجم و ششم میلادی سمیرچی، ترکستان شرقی و گانسو به ستون فقرات زندگی شهرنشینانه و کشاورزانه در منطقه تبدیل شده بود. سازمان‌یابی جمعیت ترکان و مغولان در این سرزمینها و پایداریشان در برابر توسعه طلبی چینی ها به یاری سقدیانی ممکن شد که از نظر اقتصادی و فرهنگی و در ابتدای کار از نظر سیاسی هم طبقه حاکم و راهبر محسوب میشدند. موقعیت ممتاز در این زمینه جغرافیایی بسیاری مورد تاکید قرار دادند در میانشان می از جهانگرد و جاسوسی چینی به نام پیو پی یاد کرد که در 607 میلادی در گزارشی که برای دربار چین نوشت به نقش مهم سغدیان در رهبری مردم بومی منطقه تاکید کرد به همین خاطر بود که وقتی چینی ها در 630 میلادی بر خاقان ترکستان قلبه کردن چند هزارتن از سقدیان را که صنعتگر و کشاورز هم بودند به گرفتند گرفتند و ایشان را به جنوب و آن سوی دیوار چین منتقل ساختند و وقتی بعد, بعد از حدود یک قرن خاقانهای ترکی دوباره در 691 میلادی قدرت را به دست گرفتن و ارتش تانگ را پس زدند. نخستین درخواستشون از چینی ها بازگرداندن سقدیان بود که چنین هم شد